اعوذ بالله السمیع العلیم من الشيطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا و آل ه خدمت عزیزان دانشجو از سلام داریم و صبح عرض ان شاء الله که از نعمت سحت و سلامت کامل برخوردار باشید و از هر گونه آفتی بدور بحث ما در اقراض تشبیه بود سقر از تشبیه رو اون هم از قسم عادی و معمولی که 90 درصد تشبیهات رو تشکیل میده خوندیم که یکی بیان امکان حال مشبه بود. بیان امکان مشبه بیان امکان مشبه گفتیم جاییه که ما یه چیزی رو به مشبه نسبت میدیم که امر قریبیه قریب باقیی و بعد میکنیم تا این قرابت زائر بشه دوم این بیان حال مشابه بود اون بیان امکان مشابه بود این بیان حال مشابه. گفتیم این در جاییه که مشبه وصفی دارد که مشخص نیست قبل از تشبیه شما تشبیه میکنید تا اون صفت برای او مشخص بشه و مخاطب بفهمه سوم بیان مقدار حال مشبه بود گفتیم اینجا اون صفت اون وصف برای مشبه ما معلوم مشخصه اما به شکل اجمالی نه به شکل مشخص و معین و معلوم به شکل اجمالی میدونه که مثلا سفیده میدونه سرخه اما نمیدونه چقدر شما تشبیه میکنید تا اون وصف مقدارش برای او مشخص بشه از قبل از تشبیه وصف رو به طور اجمالی میدونه شما تشبیه میکنید تا مقدارش رو به طور کامل و به طور معین و به طور مشخص بداند این سه قسم رو با هم دیو و مثالهای هم اما قسم چهارمش قسم چهارم تقریر حال مشبه تقریر یعنی تثبیت یعنی تثبیت یعنی جا حال مشبه در ذهن مخاطب پس تغییر حال مشبه یعنی مشبه رو تثبیتش میکنیم تو ذهن مخاطب جا میندازیم خب این چه اتفاق میافته این در موقعی اتفاق میافته که مشبه مثلا امر معنوی معقول باشه یه چیزی باشه که باید انسان عقلش رو به کار بندازه درکش رو به کار بندازه تا بفهمه فهمه غیر محسوس معقوله معنویه اینو تشبیهش میکنیم به یه امر حسی آن یه چیزی که محسوسه خب ما چون محسوسات رو خوب درک میکنیم اون رو هم خوب درک میکنیم بعضی جاهاش اینطوریه مثل اینکه میگه علی علم نورن نورون علی علم نورون خب این علی علم مبتدا نورون خبر تشبیه بلیغه یعنی علی علم و کن نور فل هدایته. خب چون علم فهمیدنی دانش درک کردنی محسوس نیست ولی نور رو ما میبینیم یه جایی که نور از ما همه پیدا میکنیم نور نباشه همه چیل پیش ما گمه پیداش نمی کنیم شب پس نور رو تشبیح میکنیم علم رو بهش همونطور جهل رو تشبیه میکنیم به ظلمت حالا این مثال ساده از تشبیه عادی بود ولی مثلا تو تشبیهات تمثیلی این خیلی زیاده تشبیه‌ات تمثیلی یه هیئتی که درک کردنی فهمیدنی ها اینو تشبیهش میکنیم به یه هیئت حسی ها اون سکانس رو به این سکانس تا عشان فهمید مثلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كما مثل الحمار يحمل اسفار اینکه یه یهودی میره زحمت میکشه کتاب یاد میگیره تورات کتاب الهی رو یاد می‌گیره اما چون عمل نمی‌کنه ها به دریچه ذلت وارد میشه و سقوط می و از رو به جهنم میره دیگران ممکنه از دهن و چیزی فهمیده باشن اونها راه رو پیدا میکنن اما چون این عامل نیست پس بنابرین راهش جهنمه خب این فهمیدنیه اینو تشبیه کردیم به یک الاغی که در یک بیابان داره حرکت میکنه بیابان سوزان اما کتابی روی اوست کتاب‌های روی اوست که تمام سعادت در اوست اما او زحمت حمله اینو میکشه ولی چون از اون استفاده اینو نمیتونه نقشه راهش رو پیدا کنه بنابر بنابراین مسیرش به جهنم است خبیه این به این تشمیشه یا مثلا اون کسی که توی داستان بلعم با او را خوندیم از قرآن که می گفت عالمی که مستجاب و بود ولی عمل به علم خودش نکرد این آدم شیطون دنبالش را افتاد شیطون او را گول زد و او را از انسانیت به دور کرد و در مقابل خدا قرار داد و اون سقوط کرد و وقتی سقوط کرد دیگه شد عالم فاسد عالم فاسد چه کنارش بری چه او بیاد کنار تو مزر است اعتقادات دیگران فاسد میکنه این رو تشبیه کرد به چی به سگهار که سگهار دیگه خیر و برکتی توش نیست دیگه مثل سگهای دیگه نگهبانی نمیده حفاظت نمیکنه سگهار فقط ضرر دارد چه تو سراغ او بروی چه او زراغ تو بیاید ان تحمل علیه یل هست او و یل هست که با هم دیگه, هم دیگه. این تقریر حال در این نوع موارد جایی که مشبه نیاز به تصوید در ذهن داره حالا یا امر معنوی یا یک هیئت و صورتیه که باید جا بیفته لذا تقریر حال از اقراز مهم تشمیه نگاه کنید توی قواهد میگه تقریر و حالی که ما ازاکان ما اصنه ده علال مشبه همونطور که چیزی که ما اصنادش دادیم به مشبه یحتاج و علال تسبیت ولی به مثال، این نیاز داره به اینکه که ما تسبیتش کنیم ایزاهش کنیم روشنش کنیم با یه مثال حسی روشن تا اونی که یک مقدار معقول است و صورتی است که باید فهمید وقتی تشبیه بشه به یک مثال حسی ما راحت میتونیم اون رو درک کنیم حالا خود کتاب ببینید چه مثالی زده باز یه مثال تشبیه تمثیلی زده و خیلی هم زیباست نگاه کنید میگه والذین يدعون من دونه لا تستجيبون لهم بشیء والذین یعنی بت‌ها بت‌هایی که يدعون یعنی یدعون هم عادهتن يدعون دو مفعولی یعنی یسلمون مفعول اول و دوم افتاده یعنی مصنونهم عالhatan يدعونهم عالhatan پس چی شد این بت که اینها اونها رو نامگذاری کردن خدایان بتهاشون رو خدا اله میگه این بت که اینها، اونها رو خدا نا میدند من مندون الله این مندون الله دون به معنای غیره یعنی من غیر الله این حال است از اون آید سله هست شده یعنی هم ترجمه میشه و کسانی که یعنی که می نامندین مشرکین اونها را خدایان در حالی که غیر خدا هستند، در حالی که خدا نیستند. این بوتها محلزینه مافت این جمله خبرش لا از تجیبون لحم بشهید اینها این هیچ پاسخ مثبتی به این کسانی که اینها را میپستند نمیدن هیچ کاری برای اینا نمیکن لا از تجیبون لحم بشهید لا از تجیبونه این وا میخورد بهلزینه نبودها لهم به این مشرکین به شیء نکره در سیاق نفی فاعل عمومی یعنی هیچ یه سر سوزنم برای اینا کاری رو استجابت نمی‌کنه کاری براشون انجام خب این هیئت مشبّه هیئت مشبّه چی شد یه عده از مشرکین رو گرفتند اسمشون رو گذاشتن خدا خدای فلان خدای فلان خدای فلان, خدای فلان. و اینها رو پرستند و هی از اینها چیزهایی رو میخوان که این مشکل من رو حل کن این کار رو برام بکن این توفیق رو به من بده اینجا منو حفظ کن، هی دارن از خدا نفعشون رو در جایی و دفع ضرر رو در جای دیگر هی از اون خداهاشون طلب میکنن و اونها هیچ کاری ازشون بر؟ نمیاد چون بتم. این حیت مشبت تشبیه کرده به چی؟ الا کباست کفیه للمان میگه حال اینها که هیچ چک التماس به این پتا میکنن هیچ مشکلشون هم حل نمیشه مثل کیه؟ مثل حال کسیست که کبا... کباست کفیه الماء مثل یه آدمی که تشنه است نیازمنده دوتا دستشو دراز کرده به سوی آبی لبه یه آب نشسته دوتا تا دستش دراز کرده دو دستی دراز کرده به سوی آب او لیبل و تا آب رو برسونه به دهانش تشنه است مثل اینا که نیازمندند آه، ای انتماس میکنند به این بوتها. مثل کسی که لب نهر آبی نشسته دوتا دستش رو دراز کرده به سوی آب تا آب رو به دهانش برسونه اما و ما و به بالقهی و حالا که او نمیتونه آب رو به دهانش برسونه چرا؟ به دلیل اینکه این انگشتش بازه شما اگه بخوای آب رو به دهانت برسونی به شیوه و شما دستو اینطوری باز بکنی یه بزنی زیاد ای بلند کنی و آب به دهانت تو آب برسونیم راه قلطه نتیجه نمیده التماس کردن تلاش کردن دعا کردن موقعی فایده دارد که شما بگید وسیلت درست باشه راه درست باشه وقتی راه غلطه تو به نتیجه نمی میگه مثل کسی میمونه که اینطوری حالا تعبیر کنم کسی میمونه که کنار یه نهر آبی نشسته یه دونه علک گرفته دستش یا یه آبکش کش میزنه زیرا آب میخواد آب بخوره خب نمیشه خب هر آب بیاره بالا ازش پایین. مثل کسی که کنار آب نشسته دستشو میکنه زیر آب هی میخواد آب بیاره برسونه به دهنش تا دستشو از آب میاره بیرون چی تو دستش نیست هیچ تشنه میمیره کنار آب اینا که هی خدایانشون رو صدا میکنند که این مشکل حل کن اون زرن رو دفت کن و هیچ کاری هم از او بر نمیاد و تمام مشکلاتشون سرشون خرابه و هیچ موفقیتی هست مثل اینه برست شد؟ الا که باست ای مثل کسی که باز کرده دو دستش رو الالماء یعنی انگشتانش رو باز کرده دوتستش دو رو میزنه زیر آب لیبل آب رو بیاره برسونه به دهانش و ما و به بالقیهی و حالان که اون نمیتونه حالا اگر اون سکانس اولو که یه عده مشرک دارن هی به بودهاشون التماس میکنن که این باشکل رو حل کن اون زرر رو کن هی hey, دعا و التماس به او به هیچی هم نمیشه مشکل میاد اون نفعی هم بهشون نمیرسه این سکانس تموم میشه بعد میبینی یه نفر تشنه با لبای خشک آه و حسابی محتاج به آب لب آب نشسته هی hey, دستشون میزنه زیر آب در میاره هی hey, میزنه زیر آب در میاره نگاه میکنیم این چی تو دستش نیست از تشنگی میفته که ای این دوتا چقدر به هم یعنی تلاش بیهوده اما نتیجه نامطلوب گرفتن نتیجه مورد نظر رو نگرفتن پس بنابر این این دوتا رو به هم تشویق کرده حالا نگاه کنید بخونیم میگه عمل آیت و تو که قسمت بحث اما الآية الكريمة فان لغات ها تهدس فی شأن من یعبدون الاوثان آیه کریمه داره سخن میگه در مورد کسانی که بت میبرستن و انهم ازدواج اواله تا هم لا یست لهم لحوم و اینکه اینها اگر خدایانشونو صدا سداق کنند هیچ کاری بر اونها نمیکنه مقدهاش گم میشه ولی چرچه بلای یرج و علیه دعا دعاو بفایده و هیچ فایده ای این دعا کردن و فرافاندن بودها برای اونها نداره هیچ هیچ سرسوزنی فایده نداره و قد اراد الله جل شعنه انیغر رهازه الحال و یو ثبت ها فلاصل. خدا خواسته این حال و این مثل و این صورت و این سکانس رو تو ذهن ما تغییر کنه تثبیت کنه چکار کرده؟ فشب به ها خاولا وسن یعنی بود وسنیگین یعنی بودپرستان پس تشبیه کرده این عده پرست رو به من یبس و تو در ما به کسی که دوتا رو باز کرده به سوی آب لیش رو برای که آب بنوشه فلا یسه دل ما آب به دهانش نمیرسه رسه برودا به طور بدیهی همه می دونن. که آب به دانه اون نخواهد رسید. چرا؟ لان لهو یک خروج من خلال عصارهایی مادامات که کفاه آب سرته. چون آب از لای انگشتش می ریزه تا زمانی که دستش انگشتاش باز از توی که می زنه زیر آب. صد سال هم بزنه زیر آب مثل کسی که با آب کش آب بخوره نمیشه فلقر از همین حالتش بی تغیر و حال مشبه قطعا از این تشبیه تقریر و حال مشابهه. و یه حالا یه قاعده میده و یه انتیقازل قرزو کی نمیکنو المشبه امرن معنوی گند این در جاییه که مشبه امر معنوی باشه یعنی امر غیر حسی باشه معقول باشه مثل معلم نورون که من گفتم چرا لان النفس یا هیئت باشه یک سکانس باشه کردن باید درک کنه مثل این جریان دیدید لان النفس اینو تشویش به امر حسی میکنیم تا خوب معلوم بشه میگیم چرا میگه لعن من نفس لا تیز نمو به معنویات جزمها به حسیات زیرا انسان نفس انسان یقین پیدا نمیکنه به امور غیر حسی معنویات معقولات مثل جزم خودش به حسیات جزمی که ما نفسمون به حسیات پیدا میکنه خیلی زیاد اونها رو قشنگ میبینیم لمس میکنیم درک میکنیم و امون معنویات رو باید بفهمیمشون اونا رو تشبیه میکنیم به حسیات تا کاملا مشخص شد. فهیه فحیات به حاجت پس این معنویات یعنی معنویات، این معنویات نیاز دارند به بگید اینکه ما اون‌ها رو به حسیات تشبیه کنیم تا قانع کنیم مخاطب رو. پس این معنویات در احتیاج کامل هستند برای قانع کردن. توی مطلب تمام شد. توی عبارت اون وسط نگاه کنید میگه که فشب به ها اولار الوسنیه به من جبس تو کفته الالم به یشر به فلایس للماء و فمه در صورتی که از نظر ادبیاتی باید بنویسه الا چون فم اون دیگه از اسماء خمسه است در حالت رفعی میشه در حالت نسبی فاهو در حالت جری فیه تو خود قرآنم هم آیه رو دیدید دیگه لیبلغ فاهو نه لیبلغ فمهو نه لیبلغ فاهو حالت نسبی بود مفعول بود. اینجا باید بشه فلا یسلور ما فیه بروراحت عبارت رو از نظر نهبی درست کرد تمام شد دو تا دیگه باقی مونده که این دوتا تا ایشون تو یه جا ذکرشون کرده ولی دو تاست و مقابل هم هم هستن و خیلی هم زیاد این اغراض استفاده میشن عبارتند از تزیین یا تحسین مشبه تزیین یا تحسین مشبه تقبیه تقبیه مشبه پس درست شد تزیین یا تحسین مشبه یک تقبیه مشبه دو یعنی چی یعنی ما تشبیه میکنیم تا مشبه همون قشنگ تر بشی قشنگ بشه. زینت پیدا کنی حسن پیدا کنی یا تشبیح میکنیم تا مشبه زشت بشی زشتی از مشبه به به مشبه سرایت کنیم دوست شو؟ ما زیاد استفاده میکنیم یکی رو مخواییم با قول خودمون تعریف کنید میگیم مثل فرشته میمونه، فلانی مثل فرشته است، فلانی مثل گل میمونه خب تشویش تشبیش گل قشنگه تشویش میگون قشنگی به این هم سلایت فرشته تو ذهن ما زیباست تشویش میکنیم تا این هم زیباش. این باقی که شما دارید میبینید مثل بهشت میمونه خب ما تشبی کردیم این باقی به بهشت چون بهش تو ذهن ما چیه؟ زیباست اینه تشبیهش کردیم به اون زیبایی به این سرایت جهات فراغبانه است؟ و قاتل چی میگه؟ میگه اینو رو میبینیم مثل میمون میبین. و به میمون تشبیهش میکنه واسه چی؟ واسه یه میمون تو ذهن ما تو وجود ما معلوم است که زشته پس بنابراین این هم تشبیح میکنیم تا زشتی بهش سرایه خب زیاده این دیگه است که مشخص است و شما میتونید ببینید پس بنابراین یک تزیین مشبر که گاییوها تحسین میگن چون تحسین در مقابل تقبیر خجنگرم هست دو تقبیر مشبر دو تا مثال زده دو تا مثال زد اولیش شعر اسمال آقای حسن امباری شعر اسمال آقای حسن امباری میگه خوبه ال الانباری این شخص آقای حسن امباریه احد و المجیدین یکی از شعراء خوبه آشفی بغداده تو بغداد زندگی میکرد و وفی یه سند سلاسمعتن و سمانن و اشتین سال سی و بیسته اشتر در دنیا رفته هجریتن و قدشته را به مرسیت هلتی رسابه ها عبا بن ابن وزیر از دولته مشهور شده به این مرسیهی که برای اعوان ابو تاهر گفته ابو تاهر کی بوده؟ وزیر اصد دوله دیرمی لما قتل و صلبه وقتی این آقای ابو تاهر کشته شد بعد او را به صلیب کشیدند. می به یک سلیب می‌کشیدند در دروازه شهر آویزونش میکردند که دیگران ببینن وقتی کشته شد و به صلیب کشیده شد این مرسیگر رو براش گفت، اینقدر این مرسی قشنگ بود که مشهور شد و هیم من اعظم المراسی بلن یسمعبه مثل فی مسلوبه این از بهترین مرسیه هاست و مانند او در مورد هیچ کسی که به سلیب کشیده شده باشه شنیده نشد یعنی خیلی قصاید هست در مورد افرادی که به سلیب کشیده شدن چون این کاری بوده که پادشاهان میکردن مخالف رو میکشتن دوره به سلیب میکشیدن و تا اینکه اون دیگران حساب کار خودشونو بکنه شعرا هم برای اون کسی که کشته شده بود مرثیه‌ای گفتند مثلا مرسیه های سلیبی کسانی که به سلیب کشیده شدند هست بین همه اونها هیچ کدوم به این قصیده نمیرسه لم یسمع به مصحفی مظلوم انقدر این قصیده قشنگه نگاه کنید که حتی این عزت دوله الذي را به سبهی تمام لوکان هوول مسلووب و غیلتفی. اینقدر این قیدیده قشنگ بوده جوری که از از دوله دیلمی که این آقای عزالدوله دوله وزیرش بود. از دوله دیلمی از دوله دیلمی کسی که دستور داده بود از زود دلار رو بکشن و به دار بکشن. خود این از دوله، ی دوله دیلمی وقتی که این قصیده رو دید تمنا لو آرزو کرد کاش این قصیده در مورد من بود و من به صلیب کشیده شده بودم کاش من کشته شده بودم و به صلیب کشیده شده بودم و این قصیده در مورد من گفته میشد اینقدر این قصیده یعنی قاتل گفت کاش من کشته شده بودم و این قصیده در مورد من بود حتی ان دولت الذي امره به سلبهی تمنا لوکانه آرزو کرد کاش لو لوکانه هوول مسلوب کاش خود من مسلوب بودم و قیلت فی و این در مورد من گفته شد قوله ببینیم چیم یک حالت تشبیه تمثیلی داره خب تشبیه تمثیلی داره هیئت مشبه حیعت مشبه حیعت قشنگی نیست هیات قشنگی نیست آلا من مشبه برای شما خواهم گفت که حیعتش رو این هیات قشنگی نیست که مثلا فرض کنید که انقدر قشنگ باشه که مردم اینو پستر کنن و بخوان قشنگ نیست حتی این هیات یعنی کسی که به صدیب کشیده شده باشه و میخوان اعدامش بکنن نگاه کردنش مردم پاشن برن وایسن نگاه کنن یکی رو دارم به سلیب می این حتی تو شرع هم از نظر شرعی که راحت داره تصویر قشنگ نیست این تصویر غیر قشنگ رو تشویرش کرده این به قول خودمون حیعت رو چه قشنگی سکانسی که قشنگ نیست رو تشبیر کرده به یه سکانسی خیلی خیلی قشنگه حالا اون سکانزی که خیلی خیلی قشنگی قشنگی شو به این نمیده چون این دوتا مثلا هم میشن دیگه یعنی یه تصویر زشت رو آه یه حیعت زشت رو به یه حیعت قشنگ قشنگ تشبیه کرده خب قشنگی از این به اون سرایت بود. چی میگه؟ خب یه کسی رو که به دار میزنن شما وقتی به دار میزنن شما یه دونه سلیب در نظر بگیرید یه کسی رو بهش دار زدن دستاشون روی این دو طرف سلیب می بندن. پاهاش هم به این پایین سلیب می بندن دیگه دیگه این اکسه کسی که روی سلیب باشه بعد اگر دیده باشید کسی که روی سلیب به سلیب می کشن و شما الان سالم هستیم زنده ایم گردن ما صاف پایستده موقعی گردن منو بالا می گیریم کن ولی وقتی کسی که روی سلیب مرده اون گردن دیگه صاف بایی نمیسته سرش میفته پایین حتی این تصویر حضرت مسیح رو هم که این مسیحی ها، حالا برای خودشون این تصویر رو دارند که سلیب کشیدند و او بر روی سلیب نگاه میکنید سر پایین این بخاطر خاطر که خوبی سر دیگه حیات نداره استقامت نداره می افتو پای. پس شما یه تصویر تو ذهنتون دارید یعنی الان جلوتون درست کردید یه سلیب یه کسی روی سلیب به سلیب کشیده شده دو دستش بر روی دو طرف چوب بسته شده پاهاش به پایین سرش هم میمدار خم شده به پایین این تصویریه که شما به عنوان مشبه دارید این تصویر کسی رو به سلیب میکشیدن خب این یه مثلا یه متر و نیم دو متر از بالا بود گذاشتنش بالا کرد مردم چی می شدن دورش جمع می شدن دورش جمع می شروع میکردن به هم همه کردن حالا یا او رو دوست داشتن شروع می کردن به گریه زاری کردن یا نه ها سوال و جواب و با همی هم همه میکردن. الان تصویری که ما از مشبه درست کردیم تو ذهن شما اینه یه کسی رو روی صلیب به دار زدن با همون شکلی که ما گفتیم دو دستش دو دو طرف سلیبه سرش هم پایین دست این پاهاش هم به طرف پایین بسته شده رو سلیب یه مقدار از سطح زمین بالا دوارش هم مردم جمع شده این هیئت مشابه خب؟ این هیئت هیات وشنگی نیست یعنی جوری نیستش که این هیئت کسی عکس ندازه و این رو به خواد مثلا پستر کنه و تو خونهش بچاسبنه وشنگ نیست اینو تشبیه کرده به چی؟ تشبیه کرده به یه آدمی که وایساده با دو تا دستش داره به محتاج هایی که دورش هستن دارن التماس میکنن به ما بده ما نیازمندیم من این مشکل دارم دارن میگن و اینم با دو دستش داره هی hey به اینها عطا میکنه با دو دست هی hey به اینها بگید عطا میکنه و چون کریم هستش آدمای کریم تو چشه کسی نگاه نمی چیزی بهش بدن که او خجالت بکشه اینکه ما می بینیم ما هم در شب کسی رو به چیزی بهش می دادن یا در باز می کرد گوشه در میدادن دادن نمی باب این که ریانه شد این که کرم در وجود اونها بالا بوده که اونها حتی نبودن تو چشه کسی نگاه کنن بگوی چیزی بدن لذا؟ سرش انداخته پایین با دو دستش داره کرم میکنه خب محتاج ها هم میگیرن و دعا میکنن و میرن این صورت دوم خیلی قشنگ صورت کریمی که در بین محتاج ها سرش پایینه با دو دستش داره به اونها عطا میکنه خب این صورت اول که روی سلیب بود صورت هیئت سکانس ممات سکانس موت این شخصه تشبیهش کرده به سکانس حیاتش که تو در زمان حیاتت این سکانس رو داشتی که میستادی محتاج ها دورت بهشون عطا میکردی با دو دست و به چششونم نگاه نمیکرد. میگه ما اصلا فکر میکنیم تو نموردی وقتی دیدیم تو روی سلیب هستی دوتا هم به طرف مردم درازه سرتن پایین مردم هم دورت دارن صدا میکنن ما اصلا فکر نکردیم تو مردی فکر کردیم انه زنده همون حالت زنده بودن توست که اینطور داری به مردم عطا و کرم میکن یعنی حیعت و مماتک که حیعت حیاتک حیعت ممات تو مثل حیعت حیات توه حیعت ممات زشته تشبیهش کرده به حیعت حیات او که زیبای زیباست حیعت جود و کرمه تا اینکه این به اون سرایت کن خب فهمیدید حالا شعر رو نگاه کن میگه مددت یدیک دراز کردی دو دست خودت رو روی صلیب، نه و هم به سوی این مردمی که دورتن احتفاعاً احتفاین یا مفعول لحی یعنی له یا حاله به منای محتفین یعنی برای خوشامدگویی برای استقبال میگه دو دستت رو به سوی اونها دراز کردی برای اینکه به اونها خوش آمد بگی و بگو با اونها احتفاع داشته باشی محتفین از یعنی برای استقبال کردن یا مبالغه پایین میگه المبالغت و فرکر اکرام یعنی برای پذیرایی احتفال یعنی پذیرایی که محتفیان یعنی به جهت پذیرایی یا در حال پذیرایی شما دو دستت رو به سوی اونها دراز کرده بودی و روی صلیب به جهت پذیرایی کمده ما مثل دو دستی که دراز میکردید الهی هم به سوی همین مردمان بلهباط با هفه و عطاها در زمان حیات میگه اون بالا الان دوتا دستتو مثل کسی که میخواد از کسی استقبال کنه دوتا دستشو باز میکنه تا او رو به دعاوش بگیره باش دست بده میگه دو دستت رو به سوی اینها دراز کرده بودی برای احترام و دارو گوش اینها مثل اون موقعی که دو دست تو دراز میکردی برای دادن هدیه وی. الاهتفان المبالغه تو فالتکام، بل هبات جمع هبه والمبسول بها العطيه. منظور است. خب مشخصه اون مدت یدایک مصرع اول، هیئت مشبهه، مصرع دوم حیعت مشبهان به اون حیعت مشبه، این حیعت مشبهان به کافمداد تشبیه و تشبیهش هم تشبیه تمثیلیه و گفتیم در تشبیه تمثیلی و چشبه حیعت هست و محضور قرنز اینجا چی از این تشبیه تمثیلی که آورده قرنزش اینه که حیعت مشبه رو که زمان صلیب پشیده شدن اوست زیبا کنه نگاه کنید بخونید میگه و بی تو عبل حسن الرنباری. بیت آقای ابوالحسن انباری من قصیدت ام. از عبیات یک قصیده هست نالت شهرتن فل ادب العربی که نائل شده یک شهرت عظیمی رو در ادبیات عربی لالشه این و این به خاطر چیزی نیست الا انها هستند این به خاطر هیچ چی نیست مگر این که زیبا کرده ما اجمع انناسو علا قبهی هی زیبا کرده چیزی رو که همه مردم اجماع دارند همه مردم اتفاق نظر دارند بل اینکه زشت است و اشم ازاز یعنی کراحت دارند از اون اشم از زمین یعنی از روی او بدشون اون زیبا کرده چیزی رو که همه مردم زشت می دونن و ازش کراحت دارند خوبستن و اونم اوالت است از به سلیب کشیده. بر روی شب به مد زراعی المسلوب علی خشابت و الناس له به مد زراعی بلا عطا به ایام حیاتت اون تشبیه کردین پس تشبیه کرده پس او تشبیه میکند کشیده شدن دو دست این شخصی که به بسلیم کشیده شده بر روی چوبه دار آها چوبه سدی و ناس با با است و حالا که مردم دورش جمع شدن دیگه برگیره نگفته به سرش هم افتاده با این و این ها اونا دیگه حیعتش مشخصه تشبیه کرده به مد زراعی هبل عطا به دو تسته که کشیده بود کشیده بود او در عطا بود کردن لسایلین به کسانی که محتاج بودن الیام حیاته در زمان زندگیش ولقر از اون هازت تشویق قرر از تزیین هیئت مشبه زشت بوده تشبیش کرده به هیئت زیبایی تا او هم زیباش ببینید این تزیین مشبه یا تحسین مشبه جاهایی واقع میشه کلیش این بود کلیش این بود که هیئت مشبه یا خود مشبه حالا اگه تمثیلی نباشه زشته ما تشبیش میکنیم به یه چیزی که زیباست تا او هم زیبایی بهش سرایت کنید این که میگیم زشته نه که واقعا زشت رو تشبیل به زیبا میکنیم این نه یعنی در واقع او زیباییش در حدی که ما میخواییم نیست تشبیش میکنیم به یه چیزی که زیباست تا زیبایی از او به این سرایت کنیم خب این کجاها واقع میشه میگه این قرص کجاها واقع میشه یعنی ما تو چه نوع چه نوع ناصرهایی میتونیم اینو پیدا کنیم میگه اکثر و مایکونه هازن و فلمدی بیشتر این قرز رو شما در مد پیدا میکنید. یکی رو داری مد بکنه میگه مثل فرشته خب باهم درست شد تو مد میگه این تزیین و تحسین زیاد چون میکرد داری مد بکنه تشویش میکنه به چیزی که زیباست تا و هم زیبایش فلمدی فررسا در مرسیه هم همینه میگه اون ای بوده از بین ما را هم. رسا هم در واقع مدهه دیگه فقط مدهه میت در رسا ول فخر فخر فخر هم مده. یعنی مت خودشه میگه من ای هستم در بین شما شما قدر من رو نمیدانید و فلان در فخر پس مده و رسا و فخر زمینه ایست که ما باید حواسمون باشه که ببینیم نه اینکه هرچی تو مده و رسا و فخر میاد برای این قرازه نه اونکه قراز دیگه داشت روشه ولی زمینه این قراز یعنی تحسین مشبه تزیین مشبه توش است. و وصف ما تمیل و النفوس و یکی هم از جاهاش اینه توصیف کردن چیزی که میخوای مردم به سویش تمایل کنند توصیف کردن چیزی که مردم به سویش تمایل کنند مثلا یه خربوزه رو میاره میذاره میگه بیا بخور ببین چیه خربوزه نیست که مثل عسل میمونه میه تشویش میکنه به احسا. برای چی برای اینکه شما تمایل پیدا کنی با خود ببین این غذا رو میبینی غذای بهشتی اصلا مثل غذای گنگان از بهشت اومد برای اینکه شما تمایل پیدا کنید در وصف و توصیف نسبت به چیزی که شما به سوی او تمایل پیدا کنید تشبیهش میکنه به چیزی که بگید پیش ما, ما بهش حریصیم، دوست داریم، تمایل داریم پا مثل مثل حسن این رو تشبیه باهم میکنه تا ما ولع پیدا کنیم، هرس پیدا کنیم و به طرف او تمایل پیدا کنیم و وصف ما تمیل و الهی و در توصیف کردن چیزهایی که نفس به سوی اون تمایل پیدا این قرص آخری تقبیه مشبه میاد یک شعری از یک اعرابی نقل میکنه اعرابی یعنی یک عرب بیابانی یک عرب بادی نشین این عرب بیادی نشین در مزمت زن خودش شعر گفته در مزمت همسن خودش گفته زن خودش گفته باش دعوا داشته در مزمت او این شعر رو و خواست زنه رو زشتش کن. خب. و قال عربیون فی زم مرهتی. میگه و تفتهو. و میگو فمن. این فمن مفعول تفتهوست. میگه وقتی با من حرف میزنه با من کل, کل میکنه تفتهو فمن. میگو شاید دهانی می رو. این لور ایتهو تا آخر صفت فمنه جمله بعد از نکره میشه صفت میگو شاید دهانی را بعد اون لاکانت لا بر لا فعل ماضی در بیاد اگه تکرار بشه حرف نفیه. درست شد اگه تکرار شه حرف نفی مثل لا صدقه و لا صلا نه ایمان آورد و نه نماز یه حرف نفی اگه تکرار نشه این برای دعاست برای دعاست حالا یا دعای مثبت یا دعای منفی مثلا میگیم لازل تا سالمان لازل تا سالمان یعنی انشاءالله همیشه سالم باش. یا لازل تا مریضا همیشه مریض باش. شد مثل لا سمح الله که ما میگم این لا کانت کانه اینجا تامه است لا کانت یعنی نباشد انشاءالله نفرین بکنن میگه خداورش داره اونطوریه لا کانت میگه فتف تخور که خداورش داره میگو شاید که خدا نابودش کنه فمن دهانی رو میگه باز میکنه طرف آدم یه دهن. لو رعیته با لو میگه امر لو محال ممتنع. اگر دیده بودی اگر به فرض این دهن رو دیده بودی میگه دهنی باز میکنی که اگر دیده بودی توهمتهو گمان میکردی که اون دهن بابن من النار دریست از درهای جهنم النار یعنی جهنم دریست با این صفت از درهای جهنم که یفتهو که باز شد. میگه وقتی دهنشو باز میکنه به طرف آدم ها که خداونش داره انگار که یک دری از جهنم به سوی تو باز شده دهان او رو تشبیه کرده به در جهنم چون تو ذهن ما هستش که در جهنم در زشتی باید باشه دهان او رو تشبیه کرده به در جهنم تا اون دهان زشت بشه حالا اگر بهاش خوب بود و خوب بود میگفتش که وقتی ببینی ها یک دری از در بهشت به تو باز کرده در بهشت تو ذهن ما زیباست در جهنم زشت دهان او رو تشبیه کرده به دره چهت. و با لاکانت در حفظش نفرین کرد. توخمت ها بابت توخمت ها یعنی زنن گمان کرد، اون بابن مفعول دوم توخمت هاست گمان میکنی اون دهان رو اونهای رعی تهو میخوره به فمن توهم تهو هم میخوره به فمن گمان می‌کنی، اون دهان رو بابن منن نار دریست از در جهنم یفتهو که گشوده میشه این منن نار صفت بابنه یفتهو هم صفت دوره میشه بعد از نکره صفت جار و مجرور و ظرف هم بعد از نکره صفت خب این شعر رو فهمیدیم نگاه کنید ولعرابی بیت اخیر این شخص عرب در بیت آخر یه و عن و داره سخن میگه در مورد زنش فی سختن و علمن در یک خشم و دردی نسبت و ناراحت ازش حتی انهو لگت و علیها ها بلهرمان من الوجود اینقدر دستش ناراحته که داره نفریم میکنه او به اینکه محروم بشه از هستی نباشد و لا کاند لا کاند یعنی نباشد انشاءالله و یوشبه و فمه ها باز اینجا هم داره همون اشکال رو پیدا میکنه یوشبه به فمه ها نباید بگه باید بگه یوشبه و فا ها میکنه دهان او رو هین اما تفته که باز میکنه به باب منعباب جهنم به دری از درهای جهنم ولقر من اومنها زد تشبیحت تقبیح قرز از این تشبیه تقبیه دهان رو به در جهنم تشبیه کرده تا زشنش. و اکثر ما یک نفل هجا این بیشتر از همه در هجا واقع میشه حج کسی رو میخوام بکنم آه مثل همینجا که حج به زنش میکرده و وصف ما تنفر رو تن من هون نفس ببینید در جاهای دیگری هم که بگم یکیش در جایی که حجاب عجب بود کسی رو میخواد پوش بده عجبش کنه قمیم به کار میده دوم در جایی که ما میخوایم یه کسی نسبت به قول خودمون به یه چیزی تنفر پیدا کنه بدش بیاد از اون تشویق میکنیم اون نفرت بهمون چون مشبهه به امر منفوریه اینو وقتی تشویق میکنیم همین مثلا میگه این غذا رو میبینی استفراغ فلان تا اینطوری میگه اون طرف دیگه خب بدش بود نمیخور وصف ما تنفرومن ها ان نفس و توصیف کردن آنچه که نفرت دارد از او نفس انسان خب این مشخص شد اما دو ست نفتری نفت بگم که میشه. یکی اینکه آیا این اقراز در تشبیه عادی و معمولی به یه اندازه همشون استفاده میشن اون دفعه از کردم نه اینطور نیست که ما به 6 تا 7 تا قرز خوندیم 100 تا تشبیح داشته باشیم هر کدوم 15 تا نه ممکنه که این تشبیح تحسین و تقبیح خیلی بیشتر قرزش استفاده شه اون مثلا مقدار مشابه کمتر استفاده شه ولی اینها اقراز تشبیح عادی و معبول این یک قرز مطلب دوم اینه آیا این اقراض ممکن است یه جا دوتاشون با هم جمع شه یعنی مثلا هم برای فرض کنید که بیان امکان مشبه باشه هم اینکه مثلا فرض بفرمایید که برای تقریرش باشه یا مثلا پره ممکنه ممکنه یه موقع جمع بشه این دوتا اما قرز یه دونشه گوش میکنی چون یعنی اونی که مثلا اگه خوب دقت بکنی میبینی که مثلا 90 درصد 80 درصد این برای تحسین مشتبه آورده شده حالا ده درصد روشنش میکنه یه مقدار واضحش میکنه درست شو بیان حالش هم یا تا یه حدی میکنه بیان مقدار حالش هم تا یه اونی که مقصوده میگیم اونی که غرض اصلیست یه دونش میگیم اونی که توش کاملا مشخصه درست شو اونی که توش کاملا بگید مشخصه و ما بگو اینو یعنی میفهمیم اون مشخصه درست شو پس منابراین این یه غرض ذکر میشه اگر بتونیم دوتا هم ازش بفهمیم اون یکی که به شکل لازمی فهمیده میشه تابعی فهمیده میشه دیگه ذکر نمیشه این مبحث تمام شد ولی ما چیزی نداریم بریم سر مبحث آخر تشبیه که تشبیه مغلوب یا تشبیه معکوسه ما یادتون باشه گفتیم تشبیه به دو دسته تقسیم میشه یکی تشبیه عادی و معمولی این عادی و معمولی یکی هم تشبیه مغلوب م گفتیم تشبیه عادی و معمولی که تا حالا هرچی خوندیم همه همین بوده 95% رو تشکیل میده و این آنگی هم که امروز خوندیم اقرازش بود خب این تشبیح عادی و معمولی چجوریه؟ گفتیم وحش شبه که وصف مشترک بین مشبه و مشبه هم به، این وحش شبه در مشبه هم به اقوا اشهر از ازهر اکمل نسبت به مشبه حالا یکی از اینا رو به کار دیگه یعنی وجه شبه پر رنگتر از توی مشبه هم به نسبت به مشبه وقتی شما زید رو تشبیه به شیر میکنی میگی زیدم کل اسد فل جرعه، این جرعه در اسد مشهودتر همه میگن مثل شیر شیر شیر مظهر جرعه جرأت درش کامل تره نمی درسته درسته؟ این تشبیه تشبیه عادی و معمولیه که ورش شبه در مشبهان هم به اقوا قوی اشهر مشهورتر تر ازهر ظاهرتر، اکمل کاملتر، اتم تام تر هستش نسبت به مشبه اقوا گاهی اوقات واقعا. شما وقتی نگاه کنید میبینید وچه شبه یعنی تشبیه جوری شده جای مشبه و مشبه به عوض شده جای مشبه و مشبه به عوض شده بنابراین وچه شبه تو مشبه قوی تره ظاهر تره جاشون عوض شده به خاطر همین بهش میگن مغلوب یعنی قلب شده دگرگون شده جابجا جا شده معکوس وارونه شده چجوری وارونه شده جای مشبه و به عوض شده یعنی به جایی که بگی زید مثل شیره میگی شیر مثل زید میمونه در جورت یعنی شده مشبه خود چرا این کاری میکنیم؟ اگه شما نگاه کنید و همسا من برگردم بگم فلان که هست؟ مثل سیبوه میمونه تو نه شبایی نه آقا سیبوه مثل این میمونه تو نه اینطور که میگی این دوبامی چیه؟ همیتون بارسی خودمون برای موبالب هست پس اصلا یک قراز بیشتر توی تشمیح مغلوب محکوز نیست مثل اونجا نیستش که تشمیح عادی و معمولی یک این قراز یه قرز بیشتر نیست. اون یه دونه غرزم مبالغه است هر کجایی که مبالغه باشه ممکنه تشبیر به شکل معکوب مقلوب یا محکوز مبالغه است حالا این مبالغه از کجا به دست اومده این مبالغه از اینجا به دست اومده که ما مشبه آوردیم که این مشبه ها یعنی گفتیم پیش ما پیش ما شیر جرعتش خیلی بیشتر از زید نیست بلکه زید خیلی جرعتش بیشتر از شیر شده که ما آوردیم شیر رو داریم بهش تشبیر می‌کنیم. یعنی ما ادعا میکنیم ما بالاقه دیگه ما ادعا می‌کنیم که زید جرعتش خیلی بیشتر از شیره و ما شیر رو میاریم به این تشبیر میکنیم میشه تشبیر مقلوب پس جای تشبیر مغلوب کجاست؟ جای تشبیر محکوز هر کجایی که ما نیازه به مقالقه داریم. چه کار میکنیم؟ جای مشبه و مشبه هم به عوض میکنیم لذا مشبه ما الان وچه شبه توش قوی ولی ادعای ما اینه که نه مشبه هم به که مشبه بوده یه زمانی اون الان وچه شبه توش قویه جوری که وقت اینو به اون کرد درست شد حالا نگاه کنید دیگه فهمیدید آعادید ای درس ببینید الغایده. از تشبیه مقلوب تشبیه مقلوب حت جعلل مشببه مشببه هم بید. ما مشبه و جای مشببه هم به قرار بیم. جعل مشببه مشببهند. برای چین کار میکنیم به دعای اینکه ادعا می کنیمیم ان نجه 80شب فییه و از ادعا میکنیم از نظر ما مبارالته وچ شبه در این مشبهی که الان شده مشبه هم به وچ شبه در این مشبهی که الان شده مشبه هم به اقوا و اذهر و اشخر و اکمل این مشبه هم ما بودیم که این مشبه هم از نظر ما وچ شبه در رو قویه تر ظاهر تر از تشبیح المغلوب خوب الجعل المشبه مشابه هم به مشبه و ما مشبه هم به میکنیم خب از جعل و مشبه, مشبه هم بیدیم به به این ادعا که ان وچه شبه فیهه. به این که وچه شبه فیهه. یعنی در مشبه قوی و ظاهر خب مشبه هم بردیم گوشیم مشبه هم به ادعا کردیم که ما از نظر ما این وچه شبه توش بیشتره خب هم میشه مبالغه دیگه ما به جای اینکه که بگیم زید مثل شیره زید رو بردیم کردیم مشبهان بکنیم شیر مثل زیده اگه گفتن چرایی داریم میگیم از نظر ما زید خیلی چونتش بیشتر از شیره و شیر آورد بود تشبیه کرد خب هم میمشه مبارده. نگاه کنید نموزج یک نموزج یک میگه که انن نسیم اخلاق اخلاقه نسیم مظهر لطافته نسیم مظهر لطافت که صبح شما میایید خموده یه نسیم بهت میخوره خوره همچین حال میشید اینجا نسیم را آورده در لقیق بودن لطیف بودن تشبیه کرده و اخلاق این شد در صورت که اخلاق معمولا خلق و خود چه معنوی هم هست و اینا تشبیش به نسیم که خوبتر هم فهمیده بشه نسیم لطافت توش خیلی معلومه این بگی هم یه شعر داشتیم تو شعر درس اول که هم نخلاق بکر درستیده نه در رققت و لط نسیم و سباه اگه برگردید راحت قیداش میکنید آه می‌بینید اونجا تشوی عادی خوندید که ناخلاق که فی لطفا ها و اطفی ها ننسیم سه درس یک ارگان تشویر می مثال سومش که ناخلاق که فی لطفا ها و قتنفی ها یم و سواه اخلاقو تشویر کرد به نصیر صبح کن اون تشوی عادی بود دست شد کرد اخلاق اون رو در لطیف بودن و رویق بودن به نصیم حالا میخواهد مبالغه کنه در اخلاق اون شخص شد. اینجا اخلاقشو تشبیه کرد به نسیم صبحگاهی در لطافت و تحسینش کرد, کرد. اینجا هم مبالغه میکنه میگه اصلا نسیم صوبگاهی مثل اخلاق این شخص به اخلاق خب اینو دیکی هن نسیم مشبه اخلاق مشببه هم به بچهشب بعد تشبویر مغلوب و معرکز قرزم مبارق. دورو نگاه کن که انل معف صفاع تباع که انل معف صفاع تباع این آب زلالو رو که یه دونه سوزن هم تهش افتاده باشه معلومه در صاف و پاکیزه بودن مثل طبیعت و سرشت این آقاست مثل، خلق و خوب و طبیعت و سرشت این آقاست باطن این آقا مثل ای آب زلال اما آمده کفتیم یه آب مثل باطن این آقاست معمولا تشبیه به آب میکنن برای خاطر اینکه زلال بودنشونشون میکنن یه عکس عمل کرده آب رو تشبیه کرده به طبیعت این آقا در صفا برای مبالغ باز, مثل... باز تشبیه همین تشبیه رو داشتیم. که به شکل معمولیش رو گفته بودیم. میگوهم آنکلما ان رزیت و سفاهان و از آمازخه تو کند و لهی با. اولی بیفته تو کلم در تو عقاصات تشبیه. و همون دست ارکان تشبیه هم هست که انم الماعفی صفاین و قد جلاز های بلدجه تو اونجا گفته بود و تو اونجا داشتش که انک الما آه دست دوم اقسام تشبیه دست دوم همون مثال اول انک الما انم از روش طبیعتش دیگه فرق و خوی من مثل آب نمونه این تو و صفائن. اگر راضی و خوشمت باشم از کسی در صفاه با کسی دید. اما اینجا ببینید میگه که اندال ماعف صفاه تباق، که اندال ماعف صفاه تباق، تباق جمع طبعه. تباق جمع طبعه یعنی سه شد. ببینم با لید. سه و که اندال زو ان نهار جدین و که ان از زوان نهاره چه بیر پیشانی یک نفر رو در درخشش تشبیل میکنن به درخشش روز اما این اومده برای مبالغه درخشش روز رو تشبیل کرده به پیشانی او. باید شد مبالغه هست دیگه زوان نهار تشبیل شده به جمین و شخص در اشراق که اینجا وقت شبه هست شده اما عدد تشبیل هست مغلوبه چهار را نگاه کنید و کأن نشر الروزه حسن سیرته. نشر یعنی بوی خوش. سیره یعنی رفتار. سیره فلانی رفتارش. فدومشیش رفتار. میگه که کأن نشر الروز. گویا بوی خوش باغات. بوی خوش بوستان‌ها. حسن و سیرتهی زیبایی رفتار روز معمولاً زیبایی رفتار رو در دلپذیری باید تشبیه بکنن به بوی خوش بستانها چطور بوی خوش بستانها آدم کیف میکنه نمیخواد از اون دل بکنه رفتار این شخص داری اینجا باید بگه ولی اومده بوی خوش باقات رو تشبیه کرده به حسن و سیرتش نشر و روز مشبه حسن و سیرتهی مشبهان به جمیل و اثر اثر زیبایی که میگذاره و آدم رو میکنه بچه که هست شده مغلوب و مرکوس خب ما رو فهمیدیم یعنی تشبیه مغلوب خیلی سخت نیست مثالهاش هم خودمون براتون زدیم و دیدید حالا سه تا مثال هم ایشون توی کتاب آورده و شما میتونید این سه تا مثال رو ببینید الان مغلوبش رو توی این مثال های نموزج من گفتم حالا اینجا هم داره همون رو بیان میکنه یکیش نگاه کن یک قال محمد ابن وهیب بن همیری محمد بن وهیب همیری گفت گفتن مثلا این تشبیه مغلوب جاش مبالغه است دیگه برای مبالغه است خب مبالغه رو ما کجاها میکنیم جایی که مثلا داریم متن مدخ میکنیم متن پادشاهی یا داریم غزل میگیم مثلا مشهور خودمون رو باید توش مبالغه کنیم اینه دیگه جاش اینه اینجا الان پر از مده تو مدح جای مبالغه هست. قال محمد ابن بن همیری. این محمد ابن وحیب همیری کیه؟ میگه هو متشیع آن من شعرا دولت رباسی شاعری شاعر شیعی بوده از شعراء دولت رباسی. بسری یر است. هستش از بسله بوده بغدادی گرد در بغداد بزرگ شده اتصاله به معمون و بود در کنار معمون بوده و مات معمون کرده سملم یزن منغت انلک این منغت انلک یعنی پیوسته در خدمت معمون بوده سپس پیوسته در خدمت معمون بوده حتی ماد تا اینکه مرده خب اینو فهمیدی ببینید چی میگه میگه و بعد از صباحو. صبح صبح مظهر روشناییه صبح مظهر روشنایی میاد نمیشه صبحو پنهان کرد میگه و بعد از سباهو این صبح روشن شد صبح بیرون آمد صبح دمید کهن قرته بود انگار قره صبح شما اگه صبحو نگاه کنید توی افق صبح رو نگاه کنید توی آسمان اون قسمتی که خورشید میخواد طلوع کنه میبینید اون قسمت شرق قسمت مشرق سفید میشه بعد یه قسمتی رو وسط اون میبینید سفید تره یعنی روشن تره اون همون جایی که خورشید از اونجا میاد بالا اون رو میگن گره یه پس شرق قسمت شرق آسمان همش سفید میشه تو صبح نگاه که می صبح میخواد بدمه. یه قسمت اون وسط هستش که روشنتر جایی که خورشید از اونجا میاد بالا و طوللو میکنه. خب اونو میگن قره صبح. میگه صبح روشن شد و اون نقطه روشن صبح اون قرره صبح خب مچل خلیفتته، صورت خلیفه ماست. یوم بود موقعی که مدش میکنن. صورت خلیفه ماست موقعی که اومدن مش دارن میکنن و اون هم کلیممه به اونها، به قول خودمون عطا و کرم میده منظورش از هینه ای امتده بود یعنی هینه یمتنه و موقعیه که عطا و کرم میکنه یعنی موقع عطا و کرم چهرش بازه چون کریمه و مدهو میشنبه و به کسی که مدهش کرده عطا و کرم میکنه پس گفت صورت خلیفه ما مثل دل صبح یا دل صبح نقطه روشن صبح مثل صورت خلیفه مهد بگنه میگه بلکه نقطه روشن صبح صورت خلیفه ماست موقعی که داری مرکش بگن نگاه کنید پایین تو بحث یقول البهتری این نتباشیر از سوا تشت و حفت تلعلاه بچهل خلیفته این در سمایی المدی بشارت های صبحگاهی و روشن های صبحگاهی شبیه هست در درخشش به صورت خلیفه موقعی که مدحو میشنوه و مدحش میکنه. فهندتر آهانا انهازت تشبیه خرج هم ماکانه مستقر فی نفسک. میبینی که این تشبیه از اون چی که تو میشناختی خارج شده. اون که ما میشناختیم چی بوده؟ این بوده من ان یو شبه و دائمان به ماه و اقوامه و فی بچه شده. به اینکه یک چیز تشبیح میشه به چیزی که به او از او قوی تر است در وچه شبه همشه ضعیف به قوی تشبیح میشه ما گفتیم وچه شبه در مشبهان به اقوا از هر این تو ذهن ماسه از تشبیح ولی بله این تشبیح معمولیه ازر معلوف معلوف یعنی معمولی اونی که ما باش علفت گرفتیم زیرا معلوف اینه این وچه خلیفته یا شفه سباه وچه خلیفه شبیه به صبح این بلکنه ها اکسه و قلبه للمبالغته و بلکه این شاعر اومده عکس کرده و قلب کرده برای مبالغه و اقراق به این شکل به دعا انه وچه شبه اقوافل مشبه به اینکه که وچه شبه از در مشبه و هازت تشبیه مظهرون من مظاهر الافتنانه و ال... ابدا به این تشبیه ولی غیر پدیده است از پدیده های هنروری و آوری افتنان و ابتاب خب اینو دیدی حالا دوبامیش رو نگاه کنید دوبامیش ببینید دوبامیش تشبیه تمثیلیه هیتی به حیعتی تشبیه شده ولی حیعت هم به و به مشبه تشبیه کرده الان نگاه کنید یه نفری هیئت یکی رو میگه به اسم ایسا حیعت یک کسی رو میگه به اسم ایسا و این ایسا اسم یک شخصیه که متحش کرده اسم شخصیه که متحش کرده حضرت ایسان نیست میگه این آقا ایسا نشسته در یک روزی روز ایدی نشسته شعرا میان سراغش یکی یکی متحش میکنن این هم با روی باز با اونها برخورد میکنه چهره نورانی روی باز چهره خندان دست میکنه با اینها عطا و کرم میکنه قبلش هم باهاشون خوشبش میکنه پس هیئت مشبه چیه؟ خلیفه نشسته؟ خلیفه دیگران میان سوراخش مدهش میکنه این هم با چهره باز اول از اونها استقبال میکنه بعد هم باشون سلام علیه که گرمی میکنه حرف میزنه باشون قول بهشون میده بعدم دست میکنه و عطا کرم میکنه این هیئت مشبه این حیعت رو تشبیه کرده به چی؟ به هیئت آسمان هیئت آسمان چطوره؟ هیئت آسمان اول عبر میاد بعد وقتی عبر میاد چطور میشه؟ اول عبر میاد بعد شروع میکنه به بگید رد و برق بعد شروع میکنه به قررش بعد هم باران اول برق بعد رده ما میگیم رد و برق ولی اول برقه میدرفش آسمان بعد وقتی که برق میزنه پشتش صدا میاد رد بعدش بگید باران میگه این آسمان شبیه به این خلیفه ماست خلیفه ما اول روی خوش نشون میده میخنده در سفیدش مشخص میشه چشمای برراغش میدرخشه بعد شروع میکنه به حرف زدن با خشوبش کردن بعدم عطا کردن هی hey, این شخص میره دوباره یکی دیگه این شخص میره دوباره یکی دیگه حس آسمان است که هی برخ بعد رد بعد عطا دوباره رد برق عطا همینطور برق و رعد و عطا برق و رعد و عطا ولی هی عطا آسمان رو تشبیه کرده واقعی که ان سنا ها سنا یعنی نور برق ها میخوره به ابر ابر آسمان میگه این برق ابر آسمان بلعشید از اول غروب صبح ها این لام به منای الاست یعنی الا صبح ها تا صبح اون عبر یعنی از اول شب شروع میکنه هی برق و رد و باران برق و رد و باران تا صبح این آسمان با این شکل مثل چی میمونه این حیعت مثل تبسم و ایسا مثل لبخند و روی گشاده ای آقای عیسی. هی نگه موقعی که تلفظ میکنه به وعد بعد یعنی قول مثبت میگه چشم میدم بهتون بارک الله بیا جلو ها و بعدم چی عطا میکنه چون میگن الکریم و اذا وعده وفا. کسی روی خوشنشون بده و وعده بده کریم باشه حتما عطا میکنه و بعدش هم عطا میکنه یعنی تبسم وی زادی نیلفز و بل وعده ثم یوتی عطا میکنه هیئت آسمان رو تشبیه کرده به هیئت این آقای عیسای خلیفه را مبالغه کرد میگه و یوش کو یا برق از صحابته استمر للما تشبیه کرده بخدری برق آسمان رو برق ابر شد هنگامی که استمرار دارد به شکل درخشان توانا در طول شب دو شب به البخدری برق از صحابته الزی صفت برده برقی که مستمر رست درخشان لما اند حال است از برای فایل استمرد توالاللیل تشبیه کرده به چی؟ به متعلق است به یوشبه هد به تبصم ممدوهی تشبیه کرده به تبصم ممدوهش این اما دو بله اتا موقعی که داره وعده میکنه به اتا روی خوش نشون می وعده میکنه و اتا می, می تشبیه کرده به این بلا شک کرد میگه شک نداریم ما کان لمعان البرقه اقوا من بریز ااتصا شک نداریم که هیئت مشبه قویتر از هیعت آسمان آ معمولا خوندیم دیگه که شخص کریم رو تشبیه به حبر میکنن نه عبرو به کریم ولا شک نمعان البرقه اقوا من بریغ الابتصا فکان المعهود پس معهود و معمول این بوده ان یوشد شب به حل ابتسام و بلبرق اینکه که بشه ابتسام یعنی تشبیح بشه کار این خلیفه تبسم کردنش و وعده دادنش و عطا کردنش بلبرق به برق آسمان و وعد و برق و باران در طول شب کماه یه عادت و, شعر و عادت شعران هم همینه شخص کریم رو تشبیح به عبر آسمان میکنه ولیکن نلبحتری قلبت تشبیح للمبالبت ولی آقای بحتری تشبیح رو مغلوب کرده برای مبالغه. خب اولی متح خریفه بود دومی هم تو مده بود مده جاییه که مبالغه توش خیلی سید این سه بومی در ازش فهم در ازش غزله این هم جای مبالغه است میگه و قال آخر شاعری گفته احنو لهم عشق میورزن به اونها یعنی به معشوقش رو طایفه او اهل لهم دوست دارمشان عشق میورزن به اونها این واب بابا است و دونه هم و فلاتون یه اهل و یعنی عشق میورزن به اونها می‌میرم برای اونها و حالان که و دونه هم و فلاتون و حالان که در مقابل من و اونها یه فلات هست فلات یعنی سحرا دست ما کوتاه و خورما بر نخیل بین ما و اونها یک فلات یک سرزمین وسیع هست من عشق میورزم به اونها در حالی که بین ما و اونها سرزمین وسیع است بیامان وسیع است و دونه و فلات حالا می‌خواد این فلات رو توضیح بده گوش کنید ما معمولا یک کسی حوصله داشته باشه سینه وسیعی داشته باشه خب درست شد کسی حوصله داشته باشه سینه وسیعی داشته باشه ما تشبیهش میکنیم به دریا میگیم سینهش مثل دریا میمونه چون دریا از نظر ما وسعت خیلی زیادی داره وسیعی میگیم سینه او مثل است. یعنی حوصلهش خیلی زیاد عرب ها خب با دریا زیاد سرکار نداشتن اونها با صحرا سرکار داشتند. میگن سینه اون مثل است، سهراییست است. پس سینه آشق آشق اصلش اینه که سینه وسیع داشته باشه و حوصله داشته باشه خب ولی تو عشق میبازه آشق معمولا سینه خودش رو حوصله خودش رو تشبیه به چی میکنه؟ به صحرا؟ خب ولی این برام مبالغه اومده گفته صحرا مثل سینه منه میگه من میمیرم بر اونها عشق می‌ورزم به اونها در حالی که بین من و اونها صحرایی است بعد میگه این صحرا مثل سینه من عاشق این صحرایی که بین من و اونها مثل سینه من عاشق تشبیه سینه خودش می‌کنه اهن لهم و دونهم و فلاتن این کأن جمله صفت فلاته کأن فسیحها یح فسیح یعنی وسعت گویا وسعت این فلات صدر الحلیم الحلیم آدم صبور، یعنی خودش یعنی صدر الحلیم ینی صدر العاشق یعنی صدری سینه منه خودشو میگه میگه گویا وسعت این صحرا سینه ای انسان حلیم و سبورة یعنی سینه انسان عاشق یعنی سینه خود منه اون صحرا رو تشبیه کرده به سینه عاشق در صورتی که معمولا سینه عاشق رو مثل به صحرا میکنه درست شد؟ اهن لهم و دونه و که نفسیها صدرال هلیم، میگه سیناش مثل دریا میمونه اینا میگن مثل صحرا میمونه اینجا میگه صحرا مثل سینه اوست میگاه کنیم؟ میگه و مثال سال سه و در مثال سه وم شوب به حد به صدر حلیم تشببی شده اون سهرایی که بین او و بین معشرر و خانواده اوست تشبیه شده به صدر هدیم به سینه انسان عاشق به سینه خودش. و فیلم سال سال سه به بهت الفلاتو به سرد الحریم فیلم اتصاق در بس وسط و هازا ایزن تشبیه اون این مخواسته بگه چی این مخواسته بگه اون صحرا تازه مثل سینه منه مبالغه کنه که من از کوره در نمیرم من جای خودش رو داره هرچقدر بین من و اونها یک سهرایی فاصله باشد این صحرا تازه گوشه از سینه ماست. سینه من از او وسطش بیشتر اهل له و دونه هم و فلاتون که ان فسیح ها صدران حریمی یعنی وسط یعنی که ان وسط ها صدران حریم یعنی وسط و صدران مثل وسط صدران حریم گفتیم الهلیم هم منظور یعنی اله عاشق اله آشق یعنی خودش خب اینجا تو قذر گفته و تو قذر زر و قصدش مبالبه است خب تشبیه بلیغ رو چی تشبیه مغلوب و معکوس رو هم با هم خوندیم و بودیم پنج درصد رو تشکیل میده و قصد و هم توش مبالغه است و معمولا توی بعد و رو توی غزل و اینجور چیزها دیده میشه و هر کجایی که ما یه همچین چیزی رو قصد داشته باشیم میتونیم از این تشبیه مغلوب معکوس استفاده کنیم و جای مشبه و مشبهان به عوض شده به, مب... به این جهت که مبالغه کنیم که از نظر ما وچه شبه در مشبهان به فعیلی که مشبه بوده الان بیشتر شده این ادعا رو کنیم و همون شد مبالغه خب بحث تشبیه به طور کامل تمام شد به طور کامل و ما دیگه چیزی تو بحث تشبیه نداریم جز یه دونه هاشیه کچولو که تو همین تشبیه مغلوب هستش که من اینه مخواهم اول جلسه راینده بخونم و یه بحثی داره که آخر داره که به عنوان هفت ذکر میکنه به عنوان بلاوت و تشبیه و بعض ما اوسرمین و انل عربه و محتسین درس دیگه نیست برست شد این در واقع میاد این مباحثی که ما تو تشبیه خوندیم رو اینو یه دوره میکنه یه جمبندی میکنه من از شما خواهش می‌کنم مباحث تشبیه رو شنگ مطالعه کنید روی هم به قول خودمون یه نگاهی بهش بکنید، قواعدش رو بخونید، مثال‌هاش رو بخونید، اون چه که ما گفتیم به عنوان جزوه دارید نگاه کنید که انشالله دوشنبه آینده که آخرین مبحث جمعبندی تشبیه رو براتون میخونم با اونها حاشیه درستون دوره بشه. شما اگر بحث تشبیه رو خوب فهمیدید، میتونید تو بحث مجاز دیگه با قول خودمون راحت حرکت کنید. و اگه تشبیه و مجاز رو فهمیدید تو کنایه راحت میتونید همه چی رو بفهمید و اگه اون چی که لازم باشه تو این ترم بخونید تو همین تمام خواهد شد یعنی ما تشبیه و مجاز و کنایه و ما تشبیهش رو خوندیم مجاز و کنایه رو ان شاءالله خواهیم خوند ما قهرمند باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتش